بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه یازدهم هم اعوذ بالله السمی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صل <تصفيق> الله على سيدنا و نبينا و شهير جنوبنا عبد القاسم محمد. الله اعلم. آمین. الله اعلم. فالله جبت الفجينا فارين. ولا نت الله على اعدائهم. اجمعنا الى يوم الدين. از کردین بعد از رسول خدا او موحرم از رواله اختلافاتی مابین مثل من ها و هر کس برای خود راهی را انتخاب کرده و به کسی رفته رفتر نباید در این اختلافات کنیم و به دنبال چی بردیم اون چرا که بحث شد مفصلن از شد این که ما موذفیم بر طبق آیات شریفی قرآن و بر طبق روایاتی که قبلا بعضیاش رو ارز کردیم موذفیم که به دنبال اهل بک علیه مسلام بردیم و از اونها دینمون رو اخذ کنیم و از اونها احکام رو اخذ کنیم و از اونها تفسیر آیات رو اخذ کنیم و از اونها متشابهات و محتمات رو اخذ کنیم و از اونها بیان این مطلب رو که کجا انحراف فکری در عقاید و در افکار موجوده اینها رو برای ما معین کنند، هر کسی برای خودش راهی انتخاب کرده و هر کسی هم به و روایتی اقتدار کنه اون چراغ راهی است که خدا و پیغمبر دوست دارند و ما به هستیم از بیا از او. بیت علیه السلام است. نوح به این جهات مطالبی عرض شد. و در همان اول بحث عرض کردیم برای امام سه منصب در مذهب شیعه موجوده یکی اینکه مبین احکام خدا باشد و مبین حلال و حرام و مبین متشابهات و محکمات قرآن باشد تفسیر قرآن از او باید گرفته شود و سایر امور مربوط به دین اینها یه مطلب و یه منصب این مطلب رو قبلا بحث کردیم و مفصلن گذشته به اندازه ای که مناسبه با مجلس ما بود. بحث ثانی و منصب ثانی امام ادار کردن امور مملکت اسلام. زعامت این مملکت روهده ای کی کی باید سرپرستی کند کی باید رسیدگی به امور این مملکت کنند و مملکت اسلامی در اختیار کی و به ولایت و اختیار کی این مطلب دوبون. این مطلب دوبون رو <تصفح> باید اولاً ارز کنیم این مطلب رو که آیا اون جوری که سلمی ها قائلن پیغمبر سالله علی و کسی رو برای این کار معیم نکرده آیا واقعا این چنینه؟ میشود این مطلب رو قائل بود؟ متوجه نبوده پیغمبر که کسی اگر سرپرستی از این حکومت نکند قهرن از بین رفتنی خواهد بود و نتیجتاً به هم ریخته می شود وکار گسسته می شود از دست همه در می ده خود پیغمبر سوالی والی به مناسبت این دوسی کلمه رو هم عرض کرده بودم خود پیغمبر سوالی والی بسیار بسیار متوجه این مطلب بود هر وقتی جنگی واقع می شود یه جایی رو می گرفتم طورن یه حاکم برای این بلد تقییم می کرد جنگ هایی که اتفاق می و عصا برای این جنگ ها میکرد که سرپرست این قشون کی باید باشه اینها رو پیغمبر بر تقییم می کرد در جنگ تبوک بود سه نفر را معین کرد به عنوان ریاست جنگ که اگر اولی کشته شد دومی دو باید رئیس باشد دومی دو کشته شد سومی باید رئیس باشد نیدونه یک لشکر هزار نفری دو هزار نفری ده هزار نفری بی سرپرست سر و سامون نمی گیرد. و این کلمه رو بنده ارز کردم شاید در روایات باشد که اگر اتفاق افتاد چند نفر با هم مسافرت کردن اگر بنا که ادهشون در ذهن ونی این مراجعه نشده بکنم نکردم از چهار نفر تجاوز کرد یه نفر باید بین خودشون به عنوان رئیس انتخاب کنن چهار نفر آدم پنی نفر آدم که میخوان با هم باشن باید یه رئیس داشته باشن ترض می شود به اینکه که علمگیری یادم افتاده شدن که رفاقه های ما همیدون متفرده کنند ما هم مثل رفاقه ها متفرده می شود به اینکه همه الان یادم افتاد چند نفر داشتیم می برن سفر که کتاب ها نوشته پای نفر، چیش نفر می برن سفر و با هم گفتن که خب برطق و دستور و خدا ما باید یه رئیس برای خودم معیم کنیم حالا کی باید رئیس باشه؟ البته حالا نمیدونم چهار پنی نفر بودن چه الان دو نفر یا سه نفر بودن هم بودن خلاص ما یه رئیس باید برای خودم معیم کنیم کی باید رئیس باشه؟ خلاص یه نفر رو تعیین کردن این نفر رو از رو پس بین خودشون یه نفر که به رسلشون آدم خوبی بود در بین خودشون تعیید گذن که تو رئیس با خیلی خوب این آقا رئیس شد خواستن که را بیفتن گفت من رئیسم دیگه گفتن بله گفت عبای خودشو پنگ کرد گفت هرچی بار دارین بذارین تونی عبا خیلی خوب بارک میگویستن تونی عبا بعد خود این آقای رئیس برداشت این داختونه شروع کرد. رئیس باید تحمل سختی های مرعوسین رو بکنه من باید این کار رو انجام بدم هرچی اومدم وسط به را خسته شده یکی خودش بده به من من رئیسم یا نه به بکارت من باید این بار رو به منزل برسونم باید سر زبشوری شد مثلا گفت من رئیسم ما برای اونجا بشین من باید زرفا رو بشورم میگفتن به این که ما پیشون خودمون خیال میکردیم این آقای خوبیه و این رئیس ما باشه بهتره بعد معلوم شد که خلاسای پشیمون شدیم که چرا این رئیس قرار اینکه همه زحمات ما رو به عنوان به دیاست میخواد تعمل کنه بگه من رئیسم هیچ کسا رو ندارد بزنیم برای از پیغم والی والم متوجه این مطالب بود ولی درست که دست دورش اصلا اینه که پنگ نفرم یه رئیس میخواد اون وقت این حکومت فهنابر اسلامی رو رها کرد دارم این زحمات و خودش رو سالها زحمت کشیده بود چه رنجها و ملابتهایی که فرمود ما اوزیان نبید یا به مثل ما اوزید به قدر من هیچ بری عذیب نشد چقدر مسلمان ها شهید شدن چقدر سختی که کسیدن تو دره‌ها ها و شعر عبی طالب و کوه ها اونجا میادن قایم میشدن از ترس مشرکین حالا یه اسلامی که با این زحمت پیاده شده یه حکومتی تشمیل داده حالا پیغمبر بذاره بره میشه این مطلب میشه باور کرد این مطلب رو آیا این رو متوجه نبود که این حکومت منحل اگر حکومتی نباشد این عزم شد دین منحل میشه و این وضعی که برای مسلمان ها به هم میخوره و نتیجتاً خوبصاری که در همین نشستن میان و تمام را بین میبرن متوجه این مطلب بود بنابراین حتماً باید رسول و خدای وزیفه تعییم کنی ما ایسی این که تعیین کردی و خدا تعیین فرموده و پیغمبرش تعیین کرده است که بعد از من خلیطه بعد از من کی باشه اینو رو معین کرده حالا اینا بعد خواهد آمد انشاءالله ولی سندیا میگن نه تعیین نکرده کسی رو خب از که ازم تعیین نکرده یه ضابطی هم لازم نداره که خب من تعیین نکردم شخصی رو ولی شما چی کار بکنی؟ نگفته چه کسی رو انتخاب بکنی؟ اون خلیفه من چه سفاتی باید داشته باشه؟ نگفته این مطلب رو معین نکرده که رعی دهندگان به این خلیفه کی باشند نه شرائط انتخاب شوندگان رو معین کرده نه شرائط انتخاب کنندگان رو معین کرده رفته همینجور رحای کرده این ملت رو به هم دیگه آدم آقل این کار رو نمی کنه رسول خدا سوالی واله کار وزیفه خودش رو انجام داده بلکه خدای سآل ها معین فرمیده احتمال این مطلب که رفت رو چی نگو و مردم رو رها کرد به حال خودش این احتمال اغلایی نیست از کردم پیون بری که می دانه از می شود دو نفر و سه نفر و پنی نفرم با هم اختلافشون میشه یه رئیس لازم دارن می این مطلب رو رئیس رو رها ها کنه و برای این جمعیت اسلام فردید رو تعیین نکنه می دانه این مطلب رو که بعد از این پیغمبرم دیگه پیغمبری نخواهد آمد. دانه این مطلب رو که این دین باید تا قیامت باقی باشه. این دینی که بناست تا قیامت باقی باشه سرپرست نمیخواد. احتمال این مطلب رو کسی میده؟ نه این استعمالش رو نده عقلایی نیست این احتمال. اما بر این حتما ما حالا بعدا بحثش رو می‌کنه. پیغمبر کسی رو تعیین فرموده. حالا اون کسی که تعیین فرموده کیه بعد بحثش میشه اون چرا که الان عزم میکنیم یه عدهی به این آیه شریفه تمثب کردن و گفتن خدا تعیین کرده در قرآن و اونی که تحییم کرده خدا این است که بله اول آیه که آدم نیست و امروحون فورا بینه هم مسلمون ها چنینند که اقامه نماز می زکات میدن چه می و کاراشون رو هم مشورت می کنن. خدا معیان کرده وزیف رو مسلمون ها و هم مشورت کنند و یه فردی رو انتخاب کنند برای حکومت اسلامی این دستور خداییه که در قرآن آمده این چنین در صور آمده بنابراین نشینیم و با تش... مشورت هم دیگه خزانه خالقی تعیین می‌کنیم برای رسول خدا این مطلب مطلب صحیح است یا نه مشورت شدن و برای چی خالقی میخون تعیین کنیم ما که خلافا و حکومت ها و سلطنت ها رو میبینیم اینها تا وقتی که با دین دین با اینها مزاحمت نداشته خیلی خوبکاری به دین مردم ندارم یعنی کار مخوام بکنیم همین که یه جایی پیدا شد که اختلاف نظر واقع شد این حکومت ها با دین ناسازگارن سعی میکنن دین رو از بین دبن به دین کار ندارن ما خودمون اول از اول در همین دین اسلام که اون عمر و عبیبک و امثال زالک خلیفه بودن چی شد حاصل مطلب حاصل مطلب چی شد روز اول بسم الله الرحمن الرحیم که به مناسبت هایی ارز کردیم روز اول آمدند و مرد شد فدر کنیم چی و چی و چی رو قصد کرد امر گفته بود که ناس و عوید و دنیا مردم بنده دنیا هستن در دست علی اگر منابه شود که فدک باشه و فیع باشه و نمیدونم سهم زبیر قربا باشه در دستشه مردم دورش جمع میشن ولش نمیکنن باید اینا را شون گرفت تا مردم متفرد باشن اولین اقدام مطلع. چی شد حاصل جمع مطلب چه گرفتاری ها پیدا شد چقدر اینا را این کدوم مفصل بحث کرد ولی الان نهالشه نه وقتش چقدر حدودی که تضییر شد حدود این که تذگیری شد او آمده بودم پی که عمر شاید چهار نفر شهادت دادم که حاکم پوکه ظاهرم زنا کرد ولو عمرم نمیخواستین حاکم او پوکه رو سازی ها نمیزنید خب تنفرشون شهادت دادم چهارومیش که مخواست بیاد شهادت بده چهارومیش زیاد بود چه زیاد وقتی وارد شد که مخواست بده عمر گفت میبینم قیافهی و شکلی را که مثلا اون بنده خلاهی روز را کننده که حالا من یادم نیست که مغیرته دو شعبه بوده یکی دیگه بود میبینم قیافهی را که اصحاب رسول خدا رو فار نمیکنه. این فهمید که این آقای کزایی درش نمی بین به حد بخوره به این بنده خدا اومد شهادت داد اما چه شهادتی داد؟ یک شهادت بی خودی و که بله ما یه چیزی دیدیم از دوی مثلا یه سیایی دیدیم به خلاصی شاهده و شهادت درستی نداشت خیلی قوم اومده و خدا که حد نخورد، اون سه نفره دیگر رو حد زدن که شهادت داده بودن اونا رو حد زدن خب هر اینجوریه دیگه هر اینجوریه حقوق و تزدیع شد اونقدر مردم گرفتار شدن اون حقوقاشون بودن اولی ها. بعد زمان معاویه چی شد؟ زمان بعد از معاویه چی شده خلاسه نتیجه تن شد چی شد مثلا این حاصل جمعه حکومت‌های از نشه از واقع شده در خارجه خیلی خوب برگشتیم به این مطلب و امرو هم سورا بین هم یعنی چی؟ به ما میگن فران کاری که مخوای بکنی مشورت بکن مشورت بکن یعنی یعنی خود رأی در کارها نباش برو با اهل اطلاعش بپوس مشورت بکن و مطلب برای تو واضح بشه و اقدام کن در کاری او معنی مشورته برای روایات مشورت الله. اگر بخوای کسی بکنی با یکی کسی شریک بشی همینجوری نرو او را مشورت بکن رو پرسی آدم مطمئن نیست آدم درست نیست باهاش کار کردن خوبه خوب نیست بعدا اقدام بکن مشورت بکن در کارها مسلمان ها در کارهای خودشون مشورت می کنن. اما بعد از مشورت چی شد نتیجه از آیه شریفه بعد از اینکه مشورت کردیم چی شد مطلب چه باید بکنیم تو آیه هیچ چی تو آیه ابدا چیزی نداره که مشورت اگر کردین چه بکنین؟ اگر این مشورت کردین همه تون اتفاق کردین خیلی قوم معین شد کذا و اگر اتفاق نکردین و اختلاف شد چه باید بکنین؟ تو آیه که هیچی برای ما معین نکردین این رعیه ای که میدن خودمون انتخابات و غیر انتخابات خلاصه یه دقت بکن ببین این رعی ها رعی هستش که چیزی از حق و واقع کشف بشه این مردمی که رأی میدن میشن این ای افراد رأی داده شده هر رو و آیا اون کسانی که برای خودشون دارن رأی تهیه میکنن با پول و غیر پول و سور و غیر سور و اینا تحیه میکنن؟ آیا این واقع معلوم میشه؟ اصلا اینو اسمشو اسمش شنیده بودم؟ آیا دیده بودنه؟ خبر از حالش داشتن؟ این همین مطلب اول هم یه عده رو با وعده یه عده رو با وعید یه عده من سب بهتون میدیم همه رو جمع کرده نه همه هم نبوده که حالا میکنم یه عده مختصری رو قدر متیقنش از اهل ویت رسول خلاص و عالی و عده اهدی مجلس نبوده که انتخاب کردن عبی بکر این یه دسته واضحی که همه قبول دارن که خود عبی بکرم را بود بعدا نظر امیر مؤمنین از, از کرده بود که چرا؟ امیر المومنین بود که چرا؟ ما رو حساب و حساب نکردیم که ما رو خبر کنیم بلای سرش چیزهایی از این عنوان از خواهی خب این انتخاب شده با رعای ها بود بعد از اینکه که عمر بیبک مقاس بمیره وسیعت که که برای من عمر خلیل بودشه دیگه رعای هم بعد از اینکه که عمر خواست از دنیا بره شش نفر رو معین کرد خب این شیش نفر هرکی رو تحیم کردن او درسته بقیه تبدیل شد به شش نفر بعدا هم دست معاویه افتاد معاویه هم سلطنت رو اشغال کرد و اصلا خلافت اسلامی رو به هم زد گفت سلطنت هم. این حاصل جمعه مثلا خیلی قب آیا در آیه شریفه به گفته چه بکنیم اصلا معین کرده باید تمام اتفاق بکنن یا نه که تمام ها اتفاق بکنن یعنی تمام مسلمانای عالم اتفاق بکنن یه نفر رو معین کنن اینو گفته که نگفته اگر بگه به حسب قاعدهش عملی نمیشه قابل عمل نمی جنئی اتفاق بکنن اون جم صفاتشون چه جور باید باشه انتخاب کننده چه شرایطی باید داشته باشه انتخاب شونده چه شرایطی باید داشته باشه ابدا نه در آیه شریفه است اکثریت، گفتن اکثریت نه بیر اکثریت حالتانی آیه گفته مشورت در کاراتونو بکنی به قول ما خود این نباشی کاراتونو با مشورت درود کنی رسول خدا خودش در زمان و خود حیات خودش در بعضی از کارها مشورت میکرد در قضیه جنگ احزاب. مشورت کرد با اصحاب که تمام مشرکین با هم دست جمع اتفاق کردند، دارن حمله میکنند به مدینه ما چه باید بکنیم به شما؟ شد که بنده در زنمه سلمان گفت در مملکت ما ایرانی بود سلمان در, گفت در مملکت ما در یه شرایطی دور شهر رو خندق می پیغمبرم پذیروفت و مزلمون هم پذیروفتن هم و اینجوری مشورت میکرد مرد خود آیه شریفه ببرمد و هم روحی چورا بین هم خلاسه آخر آیه داره فعضا عظمت کل توکل الله آخر آیه تو باید تصمیم باشی خود پیغمبر باید تصمیم درده باشی اگر دیدی اینها رعی دادن و تو نپسندیدی، دیدی تصمیم تو میزانه نه رعی اینها ولی که در روایات داره در جنگی در صلح بیه اغلب مسلمان ها مخالف بودن با صلح. پیغمه امر کرد به صلح کردن و با مقصفان مرکز صلح کردن بنابراین فعضا از امتفت وکل الله آیه شریفی با هم مشورت بکنید ولی تصمیمگیری با تو با پیغمبره او باید تصمیم بگیره حالا ده نفر تصمیم گرفتم به کاری صد نفر تصمیم گرفتم اگه پیغمبر نپسندید رأی او میزانه رأی این مشورت کننده پس بر این در حقیقت بنده ارض میکنم نتیجه آیه شریفه این است که یه ولی امری میخواد که بعد از مشورت او تصمیم گیر باشه. پس خود ولی امر رو با مشورت نمیشه تعیین کرد. یه احلی امری لازم داره که حاکم من این مشورت کننده ها باشه. آیو شریفه این مقدار از تو سر میان. و اما مشورت کننده ها چند نفر باشن؟ اکثریت نیزان مطلبه یا اکثریت نیست صفات اون آقای انتخاب شده چیه؟ اولاً این چیزا تو آیه شریفه دیمونه یا آقای خوشمزدهی بود که گفتش که با بالا این انتخابات کنم میکنید خیلی مثلاً چیزایی دقیق خوبیه این یکی مثلاً هزارت رعی ورده اون یکی هزار یدون رعی ورده یدون روحی خانوم اونجا علاقه داره برای اینا حالا ما باید تابع این نظر روحی خانوم باشیم که این چیکسی رو در ما آها قرار داره ما هم بفضیقیم این نیزاد مطلبه چی گفته اکسریم یه چیزه اروپایی ها گفتن ما یاد آلا با اعتراض نکنم ما موانه دنباله اونم میریم علا تو قرآن حالا به اینا کار نداریم در قرآن شریف نه اسمی از اکثریت نه اسمی از صفات انتخاب شونده است نه اسمی از صفات انتخاب شده هاست هیچ چین چیز تو قرآن برای برای کجا از این آیه شریفه میتونیم که اون وقت باید مشورت کنم و خلیفه تعیین کنم نه این خلیفه غ طربه ها مفروغاً باید باشه خلیفه ای باید باشه زمانداری باید باشه که کار به دست او باشه اون وقت ما با هم مشورت کنن اگه همه مثلا فرسون با هم متفق شدند. خیلی خوب اگر متفق نشدن و بین اینها اختلاف بود یه رست اینو انتخاب میکردند یه دسته این رو انتخاب میکردند و ازا ازامی تفتر اکرالالا میزام نظر اون رئیس پس خود رئیس رو با بشرت نبود تقیید که خود رئیس جز تصمیم گیرنده های مطلب این هم این مطلب پس اولاً این آیه شریفه هیچ چی توشبیان نشده. رعی اکثریت میزانه نداره. باید تمام مسلمونها ها بدن نداره. بعضیشون ری بدن نداره. سننه که میگن اهل حل و عقد باید نظر بدن. خب اهل حل و عقد کیا بعد حل و عقد واقع میشه. که آیا مثلا عمر جزء اهل حل و عقد هست یا نیست؟ اون وقت بینیم چه کسانی رو اینا جمع کردن و به قول ما خلاصه هرچی بله علا کلها کاری نداریم اهل حل باشه اهل خود شهر مدینه باشه هیچی توی آیه ها نیم اینا چیه بر زابطی نیستش برای ما که بگیر اینا رو خدا معین کرده و هر کسی را که اینها انتخاب کرده، هم اینا درسته خیلی خوب هر کسی را که اینا انتخاب کردن درسته حالا. کی از این خلافای اونا کدوم بکیشون با انتخاب مسلمان ها بوده ارز کردم اما عمر که با وسیعت عبیبک بوده گفته وقتی به مردم عمر خلید یه نفر گفته هیچ کس بیا نگفت یه نفر امرم که از دنیا میرفت شش نفر رو معیم کرد و بینا در بین خودشون انتخاب کنم یه نفر رو و اگر سه روز گذاشت و انتخاب نکردم، هر شیشتاشون رو گردن بزنیم بعدم خودشون خود مسلمان ها یکی سیر بر خودشون انتخاب کن و با انتخاب این شش نفر که در حقیقت انتخاب این شیش نفر هم نبود با انتخاب اون بنده خدای عبدالرحمن او عثمان خلیفه. صنابراین نه خلیفه اونا درسته؟ حالا میرون سرابه خلیفه خودمون نه خلیفه اونها درست خلافتشون درسته و نه رابطی به دست ماست که برای امروز چونه چه کسی را انتخاب کنیم و به چه رسیوله انتخاب کنیم حالا فرص داریم در این بلاد اسلامی در تمام نقاط آلم سر تا سر میخوان یه دونه خلیفه داشته باشیم ولی کی باید این را کنه و امروم شورا بینه هم این را میکنه برای ما نه امروم شورا بینه ما ب مع نمیکنه پس نه انتخاب شوندنده ها کیا باشن نه انتخاب کنندنده ها کیا باشن عددشونشانتا باشه میار هیچی در مطلب نیست و از وقتی هم داریمن سراغ انتخاب ها چی میشن از میگه انقدر آدم های خوب بودن که خیلی خوب بودن وقتی انتخاب شدن یک آکیش سوزوندن اعلام مشاه یه ارده از اول بعد بودن ولی نمایش خوبی میدادن خود سروجاز خوبا معرفی میکردم باست که اومدن سرکار شدم یک ظالم یعنی ظاهر شد ظلم هاست و نتیجه تشخیص این مطلب اینه اون وقت حالا میخواد چی بشه میخواد اون دینمون رو بدین دست اینا نه فقط حکومت من رو دین من رو میخوام بدین دست اینا که کارگردان حکومت باشن و امور دین و دنیا و آخرتمون اینا اداره کن همچی چیزی برای ما مویستر نیست و جایی که خدا دوست داشته باشه این نیست. اینی ارز می شود به اینکه که خب اومده توی مدینه میگنی به که آمد مدینه و ابن عباس گفتش که چلیدم تفسیر و قرآن می کنی ابن عباس میشه شه سو مسجد مدینه و تفسیر و قرآن می کن خب معمولا آیات شریفی قرآن که در شهرن و المومنین سلام الله علیه بود اینا رو بیان می برای مردم خب در از این به بعد حق تفسیر قرآن نداریم گفتش می گیم قرآن نکنیم ما نکن خب بخین نه قرآن اما تفسیر بکنی. هم میکنه. هم میکنه. و تفسیر نمیخواد بکنیم. او همین می همین وقتی یه حکومت جائری و رو کار تا اون جایی کاری به دین نداره که با حکومتش سازگار باشه هر نقطه ایش که با حکومتش ناسازگار بود نیست که می جللو و جللو شما خودگیره بنابراین حالا ما میخوام چی بکنیم؟ میخوام به آیه امر هم شورا بین هم اختیار رو به دین دستی آدمی که نه خوبیش معلومه نه میتواند امر دین ما رو درست کنه چون ما که از کردیم حکومت اسلامی باید دین مردم رو هم درست کنه نه فقط اداره حکومت بکنه منابراین مطلوبی که ما داشتیم از این جهت بوده نمی. در جنگ توی ندول بلاقه داره که در جنگ عرب ها با ایران در زمان اومر، امر میخواست بره خودش در جبه با امیر المومنی. تو ندول بلاقه داره که با امیر المومنین سلام با مشورت کرد که من میخوام برم در جبه حضرت فرمود نه تو نمیخواست بری جبه تو به جبهه جعی نمیخواد برید مردم خیال میکنن حاکم اسلام یک آدم مهم میه. تو بریم میفهمان خبری نیست تو تغییر بنده البته این کلبه هستی بردون براون نیست ولی مفاده بعد اونجا میگن دو اینا را از بندر ببرین حالا ترس تو دلشونه خیال میکنن اسلام یک حاکم خیلی مهم داره و یک جمیت مهم می داره و یک اصلهعا مهم مهمی داره خیال میکنن این شینه نه تو نه رو زیرا و از یه طرف هم فرمود که اول اسلام است این اطراف و جوانه به مدینه منتظرن که یک سر و صدایی پیدا بشه همینا میریزن حکومت رو به هم بزنن. تو اینجا هستی اوقل عنوانه، و قوله بنده لوزه سر خلمن هست اینجا تو کجا مقایسه‌ای نمی‌خواد بدی خب این اینجوری بوده آن علیه مسئله حکومت‌هایی بودند که از می‌شد نمی نمی‌شد برای اینها ارزش علمی قائل شد ارزش دینی قائل شد کاری از پیش ببرند این شنیدن و البته ایت چیزایی که نجد و الباقی را به این جهت داره در این سال در این در خیلی من میخواستم، بله حضرت رضا الله علیه و مجد این و ملل من بغو و آشو الا بقيم و رئیس امر عمر دین و دنیا یه رئیس لازم دارم مسلمان ها یمن الظالم عن ظلمه یقاتلون عدوهم هم یقسمون فیعه هم. هم عن ان الفساد و فيهم و فیهم الهدود و بنابراین مواما قیم و رئیس رو برای این کارا میخوان اگر بنابراین قیم و رئیسی که عدل عمل کند و با نکاتی که اسلام برگردن او گذاشته است انجام وظایف نکنه مطلوب ما از میره و این رو یه وقتی گفتم من که مطلب رو که گفتم قراز از دین که عبارت از اقامه عدل اصل یقومن نافت و بلقس با اومدن حکومت جائب قراز دین از دین میرون قراز از دین که در آیه شریفه داره بیحکم بین نافتی مختلف فی ما آغازیم پیغمبرون رو برای اینکه اختلافات رو بردارن اختلافات پیدا میشه اگر حکومتی از جالب خدا معیم نشه قراز دین از به میره نه اقامه عدل میشه نرف اختلافات میشه هر کسی بیه سرفی می چون که الان هم الان هم این مطلوب خدا نبوده این که الان هم منابراین لابد بایده کسی رو تحقیم کنه که بعدا از میکنه نتیجه آلتاهم شد این باشه که امرهم شورا بینهم ازش چیزی راجع به حکومت در نمیاد بلکه باید حاکمی باشد مفروغان و مسلم و مقرض قبول و در کارهایی که میخواد اقدام کنه مشورت کنه که اگر این کارها بالاخره به اختلاف کشید خود نظر او را به اختلاف باشه. این که از آیه در میاد به همین این نقداره گذشتیم از این مطلب و خاتمه فیدا کرد تا بعدن ببینید چه مستید اللهم از اللهم از اللهم